سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعید هستم خوش وقتم. خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده است سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. عالی است. این تخت خالی است. متشکرم. این تخت من است؟ بله، این تخت شماست. خیلی ممنون. خواهش میکنم.